ثبت المعصومین صفحه 164 قال رسول الله صلى الله علیه و وسلم و سلم اذا دخلتم بلده و دیئا اذا دخلتم بلده و دیئا و وباءها فعليكم ببصلها پیغمبر اکرم فرمودند هر وقت داخل شهری شدید و بیماری مصری فراگیر اون شهر رو احاطه کرده بود و افرادش مبتلا بودن و شما میتحسیدی که این بیماری مصری به شما منتقل شود مثل وبا، مثل تاعون، مثل آنفلانزا مثل آنفلانزای پیشرفته سارس مخصوصا وقتی که هوا آلوده هست و نزولات آسمانی کمه ذریب آنفلانزا در محیطای شهری بالاست اذا دخلتم بلدتن و بی ان و خفتم و با به ها میتونید از یک ضد عفونی طبیعی استفاده کنید مثلا پیاز از اون منطقه یا از اون منطقه رو مصرف کنید و در جیره قضایی و سبد خانوار باشه. یک زدی ویروس مؤمنان و هر انسانی در طول عمرش بیش از دیویس ویروس وارد بدنش میشه شما میتونی از یک زدی ویروس طبیعی استفاده کنید یکی دیگه از عوارز آلودگی هوا از حیث گرد و خاک یا دوده هیدروکربان ها یا بخارات مسموم و مانند اینها انواع بیماری های پوستیه حالا میتونیم در این زمینه مطالبی رو مطرح کنیم که گاهی آملهاش از بیرونه و گاهی آملهاش از درون بدن شخص تصاحب فهم پس آمله هایی که مربوطه به ایجاد بیماری های پوستی می‌شود. گاهی آمل های درونیه، گاهی آمل های بعضی از محققین ما همچون حجت الاسلام فکریم تو بعضی قسمت ها در این زمین تحقیقاتی دارم. مثلا اگر کسی ناراعتی های پوستی همچون کچلی یا بیماری جرب که بیماری گال یا گریه هست مبتلا می باشه می تونه پوست درخت سیاه توسه پوست درخت سیاه توسه پوست خشک گیاه رو صد گرم در یک لیتر آب جوشانده برای استعمال خارجی پوست هم نارهتی های پوستی هم کچلی هم درمان جرد که بیماری گال و گریه مفید به معرف گیاهیه دکتر حسین میرحیدر جلد دو صفحه دویسته مراجعه شود. دوم دمکرده شاهنگ دمکرده شاهنگ در استان سیستان و بلوچستان میگن پنوار در هندوستان میگن تنوار این دمکرده شاهنگ در درمان لکوپیس پیس یعنی بیماری برس یا ویتیلیگو مفید درمان لک به قول متخصصین پوست لوک و درما در درمان لک در درمان پیس یعنی برس ویتیلیگو مفیده دم کرده شاهنگ معارف گیاهی دکتر میحاسین حیدر جلد 6 صفحه 279 از دانشمند بزرگوار شیه از دانشمندان بزرگوار شیه سوم زماد آثاری تخم تره کسانی که مار, سم مار سمی همچون مار افعی نیششون زده در درمان گزیدگی مار افعی بسیار مفیده همچنین درمان لکه های پوست مثل ک و های پوستی زماد آثاره تخم تره معارف گیاهی جلد یک صفحه 51 مطلب چهارم کسانی که خارش پوست دارند میتونیم ما از گیاه کنگر استفاده کنیم چند منظوره هم یکی از داروهای مفید در درمان کبد چربه هم برای درمان خارش پوست بیماری حکن کبد چربشو حاشیه زرم خارش پوستشو این کتاب داره مالیدن و شستشوی فرنگی برای رفع خارش پوست مفید است معارف گیاهی جلدی یک صفحه 238 اگر کسی خشونت پوست دارد، خارش بدن دارد و سوختگی ناشی از آتش زماد اسفرزه یا اسپرزه هر دو خونده شده تو ادبیات فارسی زماد اسفرزه یا زماد اسپرزه با روغن کنجد بسیار مفیده معارف گیاهی جلد یک صفحه سی اگر کسی درخشندگی پوست و شفافیت پوست می خواهد پماد و زماد روغن کنجد خالص مادیدن روغن کنجد به صورت موجب درخشندگی و نرم شدن و شفافیت پوست صورت می شود. معارف گیاهی جلده یک صفحه سر افتر فنگ بحث دهن سمسم که سم تروایات شیعه اومده ممنون یا خود سمسم که سم کنجده ولی بحث خوردنش چون هزمش فطی الهزمه هضمش کنده لذا مصلحش چیه؟ اصله اصل هزمش سقیله کنجد هزمش دو دوتاش که با هم تلفیق میشه مخلوط میشه هضمش معتدل میشه خیلی فواید داره پس میتونی به صورت زمات یا پماد استفاده کنی روغن کنجت میتونی خوراکی بخوری ست تقویت بنیه و لطافت پوست و دل مالشک و ضعف عمومی هم خوبه به شرطی که با عسل خورده بشه به نسبت مساوی اون دیگه خارج از کتاب حاشیه زرین حالا اینکه مالیدن روغن کنجت به صورت این در معارف گیاهی جلد یک صفحه 375 اگر کسی دارای پوستی ملتهب دارای اگزمای پوستیه میتونه از گیاه یولاف یولاف یعنی جو دوسر با این جوهای عادی فرق میکنه جو دوسر یا میگوین یولاف این دارای خاصیت ضد التهاب برای انواع بیماری های پوستی مانند انواعی از اگزما می باشند. معرف گیایی یک سفر 412. کسانی که بیماری دائ الصدف دارند که تو روایات در پزشکی جدید در تخصصی پوستمو دائ صدف رو پسوریاضییس گویم و چهار 9 نوع خفیف نوع شدید پوستچولر همچنین معکوس حالا مباعث خودم برای درمان داست صدف که پس و کیسه های پر از یولاف رو رو قسمت های دائصدفی بگذارید که پوست پوست های میشه معامنا کیسه های نخی هست معامنا یا مثلا کتانی یا از الیافکنفی که داخلش معامنا همین پودر یولاف هست یعنی بزنید رو محلهایی که چیه؟ درگیر پوست ما به بیماری صده معارف گیاهی جلده یک صفحه چهارسد سیزده ما قبلنا تو تب با رسول مصطفی آیت الله شیخ عباس تبریزیان تو بحث پوست داالفیل و بحث کلاف الوجه اونا مطالبی گفتیم از جمله هر چهار مدل پسوریازیس و داستدف رو توضیح دادیم حتی تو بحثای پزشکی جدید در اونجایی که شخص دوچار پسوریازیس شدیده بحثای فوتو کم و تراپی رو مطرح کردیم یعنی شیمی درمانی توامه با پرتودرمانی رو مطرح کردیم داروهای انگلیسی و ایرانی هم گفتیم اما قادبا افرادی که داستدف میگرن و همچنین پسوریازیشون خفیفه داروش دو چیزه باید حسب شوینده های پر اسید کنن صابون و شامپو و کنار بزن بدنشون رو با کتیرا بدنشون رو با کتیرا بشورن بعد از این که از حموم در اومدن حالا با محلول کلتار با محلول گیاهی کولتار محل های درگیر دا و صدف رو زامات کنن یا ماساژ بدن. تو و صدف خفیف خوب میشه اینم حاشیه ما برای اینم مطلب نهم اگر کسی پوست شفاف براق درخشان میخواهد روزی یک لیوان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری رو به انار شیرین رو با یه لیوان آب بخوره پوست شفاف و علاوه درخشان میشه از خفگی مردگی بیتابی تاوی درمیاد قابل عرضه همه شورا به خودتون برسیم خب این مطلبی که گفتم دکتر مهندس شهرام مقصودی تو کتاب انار صفحه 27 و صفحه 77 حتی تو بعضی صفحاتش میگه تو چهار ساعت اگر دو لیوانم آب انار شیرین بخورن اشکال ندار حالا چرا گفتم شوهرها به خودشون برسن پدرها به خودشون برسن این سنت رسول الله تو روایات شیر را حل تصنم بخشی از بودجش رو پول شخصیش رو پیغمبر اکرم خرج اطریات طبیعی میکرد به خودش میرسید اگر بود فده ها اگر نبود گاهی روسری یا مقنعی خانومش مثلا معطر بود یه مقدار آب مطلق طاهر میزد معتوب میشد به صورتش میزد که صورتش بی بگیر اگر چیزی نبود مثلا خب برای اینکه رنگ صورت بی آب و تاب نباشه اگر زعفران که لارکیماس تلای سخ اگر زعفران در منزل بودا کم محلول میکرد با آب به دستورتش میکشید که صورتش آب و تاب داشته باشه جلوی ناموسش پس اینکه انسان به خودش برسه برای حفظ ناموس و بقای آفیت جسمانی و روانی ناموس این یکی از وظائف شرعیه و احیاء سنت رسول الله اما اگر شوهر به خودش نرسه. ممکنه ناموس تو فکرش وابسته به غریبه بشه این فعل حرام اخلاقی و عرفانی انجام دادی گرچه علف واهر حرمت فقهی انجام ندادی بله حرمت فقهی وقتی می شود که شخص تنخوه و اخلاق فحاشه دست بزن باشه که ناموسش برن پیش قریبه پیش نامحرم شکایت ازش کنه تو روایات شیعه می فرماید ملعون است شوهری که ناموسش بره پیش غریبه از دست شکایت کنه. خب این روایات رو عالم صالح شیعه شیخ حل عاملی در کتاب وسائل شیعه تو بحث تحذیب نفس جلد یازده چاپ اسلامیه تهران جلد 15 چاپ آلول بیت آورده پس شیعه و سنی باید احیاگر سنت رسول الله باشن ما با قرتیگری و ولنگاری و بی‌بندوباری و دوست دختر و دوست پسر و شب نشینی‌های مبتزل مخالفیم اما اینکه دختر و پسر به خودشون برسن ظاهر و باطنشون خوب باشن دیندار خوش اخلاقه ترتمیز عفیف و پاکدامن دامن باشن این سنت رسول الله زن و شوهرها به خودشون برسن دلبری کنن نه دلبری حفظ شخصیتی یک دیگر کنن احترام متقابل داشته باشن نکته سنجیای های بی جا نداشته باشن این سنت رسول الله به تبع سنت رسول الله این برادر روحانی رسول الله اخی رسول الله کیم، امیر المؤمنین علی علیه السلام این احیاگر واقعی سنت رسول الله هم تو بحث کوچکترین واحد اجتماعی که خانو خانواده است از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسی می بینیم امیر امیرالمؤمنین علی علی السلام احیاگر این سنت رسول الله چه تو بحث خانواده هم چه در جامعه های بزرگتر ننگو خوش اخلاق خوش زبان دارای رفتارهای مستق دارای اعمال صالح با نیت خالص و سنجیده به صورت مستمر همیشه احیاگر سنت رسول اللہ و فرزندان معصومش همچون امام حسن و امام حسین علیه ما صلات و, صلات و صلات هم همچنین هم. و نه نسل از نسل امام حسین همه همجورن مسلمانان اگر این چاردن معصوم رو اصبه های واقعی خودشون قرار بدن تو عمل دیگه وابسته و دلبسته و یا فریب خورده دارای شستشوی مغزی نمیشن که به هر فرض بافی و نظری پردازی از قرب و شرق باهای علم و یقین بدن و عمل کنند و دنیا و آخرتشون خراب بشن و نسلشون خرابتر اگر زرریه طیبه میخواین و اگر دوست دارین عبدالله باشید و عبدالله باقی بمانید که خدا و رسول از شما راضی باشه پس باید الگوهاتون چارده معصوم باشه حالا این فرمایش امام صادق علیه السلام تو بحث انار رمان الحلو هم بچهاتون زود زبون باز میکنن هم زود به سن شبابی میرسن رشد قدیه بچه مناسب بلوغ جنسی مناسب چون توعمه با بلوغ فکریه به بفهم... فهموهش رسول الله رو... تو بحث اتریاد این فرمایش امام صادق مثلا تو بحث انار درمانی یک کلمه روزتون گفتم ایشالله تو بحث اطفال بیشتر توضیح میدم مؤمنان بعضی از بیماری هایی هم که جدیدن شاید شده بحث بیماری اکتیوز که گاهی جنبه ژنتیکی داره گاهی جنبه اکتصابی داره یکی از اقسام بیماریهای های پوستیه مثلا برای دوره کاهش زمانی درمان تو پزشکی جدید از لوسیانهای های 25 درصد متخصصین پوست تجویز می یا نرم کننده ها یا مرتوب کننده ها مثل کراتولیک ها کراتولیک ها مطلب سوم اگر علاوه بر اکتیوز عفونت پوستی هم دوش مریض بایستی از آنتی ها استفاده کرد به نوع آنتی های موضوعی و سیستمی مطلب چهارم میتونید دست پزشکی جدید از صابون های آنتی سپتیک استفاده کنید تو بحث بیماری اکتیوز که شخص مثل مار پوست میندازه و این دوره و این سیکل معیوب هر بار تکرار میشه مطلب پنجم حمام های طولانی مدت داشته باشه پس از آن داروشیمیایی لیپید یا پماد هیوی استفاده کن اگر کسی اکتیوز اکتسابی دارد میتونه از داروهای شیمیایی جدید مثل پوتیروفنون، مثل دیکسیرازین، مثل نپروتیلین مثل نافونیدین، مثل آنتاگونیست استروژن که حتی در کانسرها کسایی که پوستاشون سرطانیه تو بحث انکولوژی یا سرطان شناسی حتی آنتاگونیست استروژن که در کانسرهای متاستاتیک پستان و کارسینوم سینه به کار میرود اگر کسی اکتیوزش چی باشه اکتسابی باشه میتونه استفاده علاوه ایجاد بیماری اکتیوز یک گاهی جنبه ژنتیکی دارد گاهی مریض بیماری مزمن کبدی دارد جگر مشکل داره سوم گایی کسی هیپر داره مشکلات قده تیروئید داره گاهی کسی کمکاری تیروئید داره پنجم گاهی کسی هیپرتیروئیدی داره سه تا شدم هیپر کمکاری تیروئید هیپرتیروئیدی ششم گایی جنبش جنبه دیابته چه به نوع یک چه به دو بیماری قم داره هفتون گایی بعضی هستم مثلا مثل این خودکار اینا دوچار بیماری HIV فعال هستم بیماری ایک زن گایی هم مؤمن هم معتادان هم. مخصوصا از آمپول های یکی دو بار چند بار مصرف شده چند بیماری میگیرن علاوه بر هپاتیت بی یکیش هم ممکنه مبتلا به بیماری اکتیوز پوستی بشن داروهای شیمیایی که باعث اکتیوز ژنتیکی و اکتسابی می شود مردان و زنان نباید مصرف کنند اینا از عوارض سوء این داروهای شیمیایی که شخص ژنتیکاً مبتلا شده به بیماری اکتیوز یا اینکه الان که مصرف میکنه فلعرز اکتسابی مبتلا میشه مثل چی؟ مثل سای میتیدین سای میتیدین ترین دارو در ایجاد احتمالی اکتیوزه دوبار کلوفازیمین در دوز بالای 100 میلی گرمی در دوز بالای 100 میلی گرمی که در درمان جزام یا بیماری خوره میگه. یکی از عوارض سوش چیه؟ اکتیوزه سوم داروهای کاهشته‌هندی کلسترول بعد (LDL) مانند تریپارانول، مانند نیکوتنیک اسید، مانند تری هیدروکسی، مانند دو متیل گلوتاریل، مانند کو انزیم آ، مانند ردوکتاز تمام این داروهایی که مامنا شمردیم یکی از علل و عوارض سوء این داروها ابتلاع شخص به صورت بلعرز یا تو نسلش ایجاد بیماری اکتیوزه بخوایم درمان کنیم بیماری اکتیوز رو با داروهای نوترکیبی هومیوپاتی که در بلوک غرب اروپای غربی بیشتر کاربرد داره تو ایران هم هست بیماری اکتیوز ژنتیکی که بیماری پوستی ژنتیکیه شخص مانند مار پوست میندازه پوستش هم سفیده خاکستری قهوه به قطر یک میلیمتر تا یک سانتیمتر پوست شخص میشه این پوستی که میندازه به قطر روز خامت یک میلی‌متر تا یک سانتی‌متر می شود. حالا این اکتیوز ژنتیکی رو با داروهای هومیوپاتی کمک به درمان میکنیم یا درمان می‌کنیم. بیماری اکتیوز اکتسابی که بیماری غیر ارسی پوستیه که با پوست خشک و سخت و ورقه ورقه شده عین فلس مار این حالت این, این حالات رو داره. میاییم اثر سر وزئیه بعضی داروهای شیمیایی و بعضی بیماری هایی که مثل اوتو ایمن متابالیک یا اندوکرین و یا بیماری های این بیماری های زمینه ای رو در فرد درمان میکنی یا پیشگیری میکنیم از این بیماری های زمینه ای بعضی از دکترها مثل دکتر نا... نادر که ایشون میاد میگه دکتر اسمت شبان ایجوری گفته وازم تو مجله علمی پزشکی امروز این مطلب رو بیان کرده هم یک کلمه. میگه درمان اکتیوز با درمان لپوس نیز رفع میشه مشکلات قدرت داخلی هست در خانم ها بیماری لپوس میگه میگه اگر ما با داروی لپوس که درمان بیماری لوپوس میشه میتونیم درمان اکتیوز اکتسابی کنیم حرف دوتا دکتر رو دارم نقل میکنم من نتعیید میکنم اینجا رو نرد میکنم حرف این دوتا دکتر اینه درمان اکتیوز با درمان لپوس نیست رفت میشود اکتیوز اکتسابی در زنان با درمان داروهای لوپوس در زنان داروهای مشتقات ویتامین آ در بعضی بیماران کمک کننده به درمانه الجزرو گفتم حویج رسمی حویج زرد. اونجا مومنان خیلی فایده داشت زیاده نور چشم با با با. یکی از فوائدشیه بحث پایه ویتامین آس که بتا کاروتنه هر میوه و سبزی که زرد رنگ باشه ویتامین آش زیاده چون درش پایی ویتامین آ که بتا کاروتنه هست و اسید کلوریدری که میده ترکیب میشه ویتامین آی زیادی تولید میکنه پس مصرف جذب برای کسی که بیماری اکتیوز داره بسیار مفیده میتونه آبشه بخوره میتونه خورش رنده کنه بخوره میتونه مرباشه بخوره پس یکی از معین به اصطلاح ما تو عرفان یکی از معدات رضا به اسطلاح پزشکی میگه کمک کننده به درمان ویتامین آ و مصرف ویتامین آ داروی موضعی ترکیبی حاوی کراتولیتک لیتک یا داروی لایه بردار یا داروی لایه بردار گفتیم از یه میلیمتر یک سانتیمتر میشه لایه برداری کنیم این رندایی هست که نجاری دارم که میخوام پرداخت کنم چوب رو لایه لایه به تو بعضی سایت های سلامتم که عضو تحریریه سایت سلامت ایرانه بعضی از چیزها رو هم تذکر دادن مثلا گفتن مرتوب کردن پوست برداشتن پوسته ها با استفاده از نرم کننده های های شیمیایی اسید معده اوره خون پراپیلین پرپیلن گلیگل و چهارم اسید رتینوتیک می میتونیم با این چیزها هم چیکار کنیم لایه های پوس رو کم کنیم این از گفتارهای دکتر نادر. بعضی دکترها مثل دکتر نسله الله سلطنیان میگه داروی آلو احورا صبر زد تاثیر روی پوست داره و میتونه کمک کنه به بخشی از درمان اکتیوز. اینا در حد فرضیه یا نظریه پردازیه و در محیط آزمایشگاهی و کلینیکی به منصه ظهور و داروی واقعی که تو سطح جهان استفاده بشه مطرح نیست یکی دیگه از دکتران میفرماید دکتر خلیل فارسی نژاد با ازدیاد سن درمان خود به خودیه بیماری اکتیوز حاصل میشه اللهم علی محمد و